یادم افتاد که چه بدبختی از دست این مرد که اکنون پشت من ایستاده است نصیب من گردید. اگر آن روز در دفتر مدرش کمی توجه می کرد، شاید امروز من هم خوشبخت بودم. برگشتم و با نگاهی که تمام این شوق کوفته مرا می نمایاند به اون نگاه کردم. پرسید چیست؟ چرا اینطور به من نگاه میکنی؟ دو سه قدم به من نزدیک شد درست انداختم به گردنش و گفتم ماکان دلم دلم میخواست مثل تو نقاش بودم زدف های من را نوازش داد مدتی مرا آرام نگاه داشت بعد با دو دست بزرگ استخانیش گونه های من را گرفت خیره به چشمان های من نگریست مدتی لبهایش تکان میخورد مثل اینکه عقب کلماتی که گم شده بود میگشت فقط چشمهای مرا بوسید و هیچ نگفت چه میتوانست بگوید آیا لازم بود آنچه را که پنج سال پیش با زبان بیزبانی گفته بود باز تکرار کند اما این را میفهمید که من دیگر آن دختر حبسواز جلفان روز نیستم این را میدانست آقای ناظم نمیدانید وقتی شوق ایجاد و آفرینش در شما هست اما استعداد و کار ندارید چطور یحز و نامیدی در لابلای وجود شما میخزد و دنبال لانه میگردد روی چایپایی نشستم و او کنار من ایستاده بود در جوار او زیبایی و سعادکی که ته دل مزه تلخی داشت احساس می کردم ناگهان شروع به صحبت کرد آرام مثل اینکه هایی را که قبلا از بر بود دارد میخواند گفت میخواهم چیزی بگویم که شاید برای تازگی داشته باشد شاید هم نتوانی و نخواهی بفهمی آم من مجبورم به تو بگویم زیرا نمیخواهم دختر جوانی مثل تو را فریب بدهم سرنوشت من با سرنوشت این مملکت تام است برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود ندارد اگر تو بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بدهی بدبخت میشوی مثل بچههایی که درسشان را بلد نیستند به تته تت افتاد اما من حصلههم سر رفت و گفتم میدانم هرچه تو میخواهی بگویی خودم فکرش را کردم. میدانم. من شایسته تو نیستم. برای تو جوان هستم. تو همش در فکر آینده هستی. آ من هم میخواهم یک آن در تمام عمر خود لذت زنده بودن را بچشم. این است که آمدم و دارم خودم را به دامان تو میاندازم. میدانم که دودلی مرا مشکوک کرده. فردایی برای من وجود ندارد. فردای من تاریک است. با تو تاریک است. بی تو از این هم بدتر است. فایده ندارد. حرف نزن. من از تو خیلی جوانتر هستم. کاش میدانستی چه بر سر من آمده. من خیلی سال خورده تر از آن هستم که سنم نشان میدهد. گفت. بگو برای من، چه به آمده؟ گفتم، شما تا به شنیدنش را ندارید. میترسم که از نظر شما بیفتم. گفت، برعکسش هم ممکن است. پرسیدم، برعکسش چیست؟ گفت، برعکسش این است که شاید ارزش شما در نظر من، خیلی از آنچه تصور می کنید بیشتر شود گفتم نه nah, نه nah, گفتنی نیست همه مردها از این حرف ها میزنند آقای نازم شما بگویید چه میتوانستم به او بگویم در گفت های آن روز هیچ چیز تازهای برای شما وجود ندارد آنچه من حدس می‌زدم درست درآمد این مرد از فولاد بود وقتی صدای من از پای تلفن شنید دیگر تصمیمش را گرفت. او برای هر فردی احترام قائل بود. او میتوانستان روز با من هرچه بخواهد بکند. میتوانست من را مانند کنیزی در آغوش بگیرد. اما این برای او کافی نبود. او همان چیزی را میخواست که من طالبش بودم. او از بدن من لذت نمی برد. او روح مرا میخواست و میترسید که نصیبش نشود او معشوقه نمیخواست او همرزم میخواست در مبارزه که در پیش داشت میخواست از وجود من کمک بطلبد او کسی را میخواست که پای او گذشت داشته باشد و همراهش بیاید و از هیچ بلایی نهراسد نهار, نهار خوردیم از همه چیز گفتگو کردیم جز از عشقی که هر دو پنهان در دل میپروراندیم بله عشق آشکار ما همان شب در کنار نهر کرج زیر درخهای زبان گنجشک آغاز شد و همانجا هم پایان یافت ببینید این مصیبت عظیم زندگی اوست میدانید آتشی که زیر خاک سر میماند چه دوام و دارد عشق پنهانی عشقی که انسان جرأت نمی کند هرگز با هیچ کس سواره آن گفتگو کند به زبان بیاورد به هر دلیلی که بخواهید از لحاظ قیود اجتماعی از نظر طبقاتی به سبب اینکه که معشوق ادراک نمی کند و به هر علت دیگری آن است که درون آدم را می خورد و می سوزاند و آخرش مانند نقره گداخته شفاف و سیغلی می شود من جرأت نمیکردم به او بگویم که چه در دل دارم. او میخواست مرا مسون نگه دارد. با وجود این با هم یک فرق اساسی داشتیم. تمام قوای من در اختیار خودم نبود. من نمی توانستم آنچرا که در اعماق وجودم می جوشید به کلی پنهان کنم. در حرکت لبهایم، در رفتار معدب و مهربان با او، ساعت کور کورانه از آنچه او دستور میداد در نگاه چشم در ذوق و شغی که هنگام مواجهه با او نمایان میشد در کلیه کارهایی که به نحوی با او تماس داشت این صدای خود را بروز میدادم اما او جور دیگری فکر می کرد. او جور دیگری حس می کرد. اما می به تمام عواطف خود غلبه کند اگر کسی دائمان مراقب ما بود، نمی توانست جز این نتیجه بگیرد که من دل باخته او هستم و او مردی سنگ دل که اصلا بوی عشق به مشامش نرسیده و کوچکترین توجه ای به من ندارد. از همین جهت او بیشتر زهج میکشید و همین تابلوی که الان در مقابل شماست دلیل آن است.